قسط های هزار یک شب شب چهل و هشتم. دختر نسرانیه چون این سخنان با شرکان گفت شرکان را قرور جوانی و همیت دلیری بران بداشت که خیشتن به او بشناساند و به خشم آورد. ولی حسن بدی و فزونی جمالش شرکان را منع می کرد و می گفت ای ماه رو گر تو به شمشیر تیز حمل بیاری رواست چاره ما هیچ نیست جز سپرانداختن پس دختر نسرانیه به فراز دیر برفت و شرکان بر اثر او همی رفت تا به در دیر برسیدند. دختر در بگشود. با شرکان به دهلیزی بلند درآمدند که قندیل ها بدان جا افروخته و مانند آفتاب هر تو افکنده بود. چون دهلیز به نهایت رسید کنیزکانی دیدند، که های افروخته به دست ایستاده اند. پس کنیزکان پیش افتاده دختر نسرانیه به دنبال و شرکان از پی ایشان همی رفتند تا به دیر برسیدند دیدند که سریرها مقابل هم گذاشتند و پرده های دیبا آنها آویخته و زمین دیر را رخام و مرمر گسترده اند. و در میان دیر حوزیست بزرگ که بیست و چهار فواره زرین در آن حوز نشان و آب به سان نقره خام از آن فواره ها میریزد و در صدر دیر تختی گذاشتند و فرش حریر بدان جا دختر به شرکان گفت یا سیدی به فراز تخت شو شرکان به فراز تخت بر شد و دختر از دیده او پنهان گردید. شرکان از خادمان پرسید که خاتون به کجا رفت. گفتند به خوابگاه خیش رفت و ما به خدمت گذاری توی ایم. پس از آن هر گونه خوردنی بیاوردند. شرکان خوردنی بخورد و دست بشست و خاطرش به سپاه اسلام مشغول بود و نمیدانست که بر ایشان چه گذشت. و تا بامداد در کار خود حیران و از کرده پشیمان بود و این شعر همی خواند. راحت همه پیش غم برانداخته ایم در بوته روزگار بگداخته ایم کاری نه چو کار آقلان ساخته ایم. نقدی به امید نسیه در باختیم. آمد دید که بیست تن کنیزکان ماه روی و آن دختر در میان ایشان چون ماه در میان ستارگان همی آید. چون نزدیک شدند ملکزاد شرکان از مهابت حسن و جمال او بر پای خواست آن زهر جبین دیر زمانی به شرکان نگریست و تعمل کرد شرکان را بشناخت و گفت یا شرکان، یا شرکان، مکان ما مشرف کردی و بر بهجت منزل ما بیافزودی. دوش تو را چگونه گذشت؟ پس از آن گفت، دروغ ملک زادگان را ننگ است خاصه به چون تو ملک زاده ای که از همه ملوک برتر هستی؟ خود را پوشیده مدار و حسب و نصب پنهان مکن و به جز راستی سخن مگو که دروغ دشمنی فزاید چون شرکان دید که جای انکار نماند با او گفت من شرکان به نعمان هستم پس دختر سیمینبر با او گفت خاطر آسوده دار و هیچ مترس که تو ما را مهمانی و میان ما حق نمک پدید آمد و دوستی و مودت به هم رسید تو در پیمان من هستی به حق مسیح اگر مردم روی زمین آزار تو را خواهند نتوانند مگر اینکه من بمیرم که تو در امان مسیح مریمی پس در پهلوی شرکان بنشست و ملاعبت آغاز کرد چندان که شرکان را ترس برفت پس از آن دختر نسرانیه با زبان رومیان کنیزی را سخنی گفت کنیز ساعتی برفت چون باز آمد شراب و تعام حاضر آورد شرکان چیز نخورد و با خود گفت شاید که زهری به تعامندر درگذاشته باشند دختر مکنون خاطر شرکان بدانست و گفت به حق مسیح که نچنان است که گمان کرده ای. اگر من کشتن تو را بخواهم به من دشوار نیست آنگاه خود به خوردن بنشست و از هر گونه خوردنی بخورد و شرکان نیز همی خورد تا اینکه خان برچیدند و دست بشستند دخترک فرمان داد که نقلو، و گل و ریحان و قده های نقره و زرین و بلورین و شراب حاضر آوردند پس دختر بنشست و نخست قدحی خود بخورد و قدهی به شرکان پیمود و همی نوشید و همی پیمود تا اینکه شرکان مست شد و به خردش زیان آمد چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است